کل مشکین تو روزی که ز ما یاد کند ببرد اجر 200 بنده که آزاد کند قاصد منزل سلما که سلامت بادش چه شوادگر به سلامی دل ما شاد کند امتحان کن که بسی گنج مرادت بدهند گر خراب چمرا لطف تو آباد کند یا ربا درد دل آن خسرو به شیرین انداز که به رحمت گزری بر سر فرهاد کند شاه را به از طاعت صد سال و زو قدر یک ساعت عمری که در او داد کند حالیا اشربه ناز تو ز بنیادم برد تا دیگر واره حکیمان چه بنیاد کند گوهر پا که تو از مدهت ما مستقنیست فکر مشاوته چه با حسن خدا داد کند ره نبردین به مقصود خودندر شیراز خرمان روز که حافظ ره بغداد کند